دوستان، قانون نهایی زندگی چیه؟ شما شاید ده فرمان رو میدونین. شاید حتی اونا رو از حفظ میدونین. اما میدونی در وهله اول چرا خدا اونا رو به ما داده؟ در درس امروز معلم ما به ما کمک میکنه به هر کدوم از اون فرامین نگاهی بندازیم و به ما نشون میده که عیسی اونها رو چطور تفسیر کرده و کاربرد اونها رو در زندگی اطرافیانش توصیه کرده. این شما و این معلم ما با درس امروز به درس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید در پایان درس گذشته در بررسی کتاب مقدس به کتاب خروج رسیدیم جایی که ده فرمان را یاد گرفتیم در این درس ضمن مطالعه کتاب خروج میخوام مطلبی رو با شما در میون بذارم که پولس رسول به اون روح قانون گفته مخصوصا میخوام در درس امروز به روح ده فرمان متمرکز بشیم. ضمن بررسی عهد قدیم در کتاب خروج بر گسترش قوم یهود، مشکلاتی که قوم یهود داشتند، مشکل بردگی و نبی که اونها را از اون بردگی نجات داد، تمرکز کردیم. و بر قدرت خدا همانگونه که در کتاب خروج ظاهر شد و نگاه مختصری به فسح انداختیم. آین بزرگی که قلب رهایی یا نجات قوم یهود بود. در این جلسه میخوایم به نبوتی که در این کتاب هست متمرکز بشیم. کتاب خروج به عنوان کتاب شریعت قلم داد شده چون که حاوی تعداد زیادی از قوانین خدا برای قومش است. این کتاب ها مثل خروج، لاویان و تسنیه پر از قوانین هستند. وقتی موسا در سه مرحله مختلف به بالای کوه سینا رفت، به مدت چهل شبان روز روزه گرفت و از خدا کلامی مکتوب خواست که به وسیله اون بتونه بر قوم خدا حکومت کنه و قوم خدا رو هدایت کنه. خدا با او چیزی رو داد که بهش شریعت موسا میگیم. همینطور بهش شریعت خدا میگیم. این شریعت موسا یا پنج کتاب اول کتاب مقدس عملا از حدود 500 قانون تشکیل شده. آیا میدونستید که این 500 قانون در ده فرمان خلاصه شده؟ قبل از اینکه به ده فرمان نگاهی بندازیم که خلاصه 500 قانون کتاب های شریعت هست، فقط میخواستم که یه کمی از دیدگاه عهد جدید درباره شریعت خدا با هم صحبت کنیم. در عهد جدید وقتی عیسی رو میبینیم، میبینیم که عیسی فلسفه‌ای درباره سوالات شرعی یا مسائل شرعی داشت. میتونیم اینجوری بگیم که اختلاف بین عیسی و فریسی ها و صدوقی ها و رهبران علمای یهودی دوره او شریعتی بود که بهش اهمیت می‌دادند. چیزی مثل این بود، عیسی میدونست که شریعت از بطن محبت خدا نسبت به قومش و برای محافظت و برای ترفیع قومش سرچشمه گرفته. او می دونست که خدا این شریعت رو به ما داده. همه این شریعت رو، چون که ما رو دوست داشت، بنابراین او می دونست که شریعت باید همیشه یک اظهار محبت خدا نسبت به انسان باشه و همیشه باید رضایت انسان را به دنبال داشته باشه. عیسی قبل از اینکه که شریعت خدا رو در زندگی مردم به کار بگیره، اون رو از منشور محبت خدا عبور میداد. داد. فریسی ها و صدوقی ها و علمای دین این کار رو ر اونها پذیرش کتاب رو خیلی شریعتی و بدون فیض خدا به مردم تحمیل میکردند. عیسی هرگز این بود از حقیقت رو فراموش نمیکرد که خدا از دادن این شریعت منظوری داره مثلا وقتی او قوانین سبت رو داد که قوانین زیادی برای مقدس نگه داشتن روز سبت بودن عیسی می دونست که منظور از اون قوانین سبت رضایت انسان بود پس او عمدن بعضی کاربورت شریعتی قانون رو شکست تا اینکه توجه رهبران مذهبی رو به این حقیقت جلب کنه که سبت به خاطر انسان به وجود آمده. انسان به خاطر سبت به وجود نیامده. خدا قانونی خلق نکرده که بعد انسانی بسازه که مناسب اون قانون باشه. خدا انسان رو خلق کرده و قانونی به وجود آورده به نفع انسان. قبل از اینکه عیسی شریعت رو در زندگی انسانها به کار بگیره، همیشه شریعت خدا را از منشور محبت خدا عبور داده. و بعد اون رو در زندگی مردم به کار گرفته. اگه این کار رو نکنید، میتونید مردم رو با تحمیل شریعتی کتاب مقدسه به اونها از بین ببرید. کتاب مقدس نباید اونطور به کار گرفته بشه. پولس رسول همون چیز رو شر میده وقتی که در دوم قرنتیان باب سه آیه شش میگه نوشته میکشد لیکن روح حیات میبخشد، منظور از نوشته کاربرد شریعتی قانون در زندگی مردم هست. اون میکشه. اما روح قانون، اون حیات می‌بخشه. روح قانون همیشه محبت خداست و برای نیکوی انسانه. حالا میخوایم خیلی سریع ده فرمان رو مرور کنیم. این ده فرمان خلاصه 100 فرمان هست. پس اگر ما روح ده فرمان رو ملاحظه کنیم، به روح صدها فرمان دست خواهیم یافت. ده فرمان همونطور که می‌دونید در دو لوح ثبت شده بود. در یک لوح چهار فرمان بود. اون چهار فرمان روابط ما با خدا رو سامان میداد. چیزی که میتونیم بهش روابط عمودی در زندگی بگیم که همیشه در اولویت هستن. بنابراین لوح اول حاوی چهار فرمان بود که ناظر بر روابط ما با خدا بود. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی شبیه من مساز. نام من باید مقدس و مخترم باشه. نباید نام مرا به باطل ببری. روز سبت رو یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. روز مرا به خاطر به و اون رو مقدس بدار اون چهار فرمان مربوط به روابط عمودی ماست روابط ما با خدا لوح دوم حاوی شش فرمان بود و اون شش فرمان درباره روابط ما با مردم هست اون شش فرمان چیزیه که ما بهش روابط افقی میگیم چون که اونها ناظر بر تمامی روابط افقی انسان هستند یادتونه که بعدها عیسی اون دو لوح رو در متی 22 و آیه 35 تا چهل خلاصه کرده وقتی یک عالم دینی از او راجب تمام شریعت موسا پرسید که کدام یک بزرگترند، عیسی پاسخ داد خداوند خدای خود را با تمامی دل و جان و فکر خود محبت کن و همسایه خود را مانند خودت محبت کن. وقتی عیسی این را گفت، در واقع ده فرمان دلوه را خلاصه کرد. اگر خدا را با تمام وجودتون محبت کنید، شما اون چهار فرمان اول را به جا خواهید آورد که ناظر بر روابط شما با خداست. اگر همسایتون رو مانند خودتون محبت کنید شما اون شش فرمان رو که مربوط به روابط شما با همسایتون هست به جا خواهید آورد در حالی که این ده فرمان رو مطالعه می‌کنید یادتون باشه اگر روح این فرامین رو ببینیم روح صدها فرمان رو خواهیم دید اولین فرمان در اولین لوحین بود تورا خدایان دیگر غیر از من نباشد کسی گفته که پیغام کتاب مقدس میتونه چکیده دو کلمه باشه اون دو کلمه عبارت از اول خدا این چیزی که در واقع فرمان اول میگه اول خدا اگر خدا چیزی هست پس خدا همه چیز هست و تا زمانی که شما خدا رو به عنوان همه چیز نبینید خدا رو به عنوان هیچ چیز هم نخواهید دید پس روح فرمان اول اینه اول خدا دومین فرمان ما رو از ساختن صورتی تراشیده و تمثالی از آنچه بالا در آسمان و از آنچه در پایین در زمینه و هر آن چیزی که شبیه خدا هست من کرده. کاربرد عملی این میتونه منعه پرستی باشه. این فرمان بودپرستی رو ممنوع کرده. روح این قانون به هر حال چیزی شبیه اینه. خدا یک روحه. ما قراره با ایمان به حضور خدا بیاییم. از اونجایی که خدا یک روحه، موضوع ایمان ما همیشه نامرئی خواهد بود. این روشیه که مورد نظر خداست. او میخواد که با ایمان به حضورش بیاییم. اگر ما بخوایم چیزی مادی و ملموس بسازیم و بگیم که این چیز معرف خداست ما این حقیقت رو که خدا یک روح هست انکار میکنیم. با ساختن چیزی مرئی به عنوان خدا ما نیاز به ایمان را از بین میبریم. من ایمان دارم که این روح فرمان دوم هست. خدا یک روح است و او میخواد که ما با ایمان به حضورش بریم. نیاز به ایمان رو و این مفهوم رو که خدا روح است، با ساختن چیزی قابل رویت و ملموس مانند یک بت از بین نبرید. سومین فرمان این بود که نباید نام او را به باطل یا بیهوده ببریم. این قانون اساساً برای کفر به کار نرفته، اگرچه میتونه به چیزی که ما بهش بی‌حرمتی میگی بشاره داشته باشه. چیزی که از این در روح خودش استنباط میشه اینه. هر بار که شما نام خدا رو می‌برید، خصوصاً وقتی پرستش می‌کنید، وقتی از نام خدا صحبت می‌کنید، حتی در دعا باید یادتون باشه خدا دارای منظور و صاحب فرمان هست او آنقدر خدای صاحب اختیار و منظور هست که نمیخواد شما نام او رو بدون تفکر در منظور او بر زبان بیارید فرمان چهارم در لوح اول مربوط به ثبت هست روز ثبت رو یاد کن تا آن را تقدیس نمایی عملا این کاربورت های خیلی خیلی زیادی داره بسیاری از قوانین رهبران مسیحی از این فرمان ثبت سرچشمه میگیره اما اصل مانند فرمان اول هست. اگر خدا اول هست پس او باید حداقل یک هفتم زمان ما رو داشته باشه. خدا میخواد که ما زمانی به او اختصاص بدیم به خاطر همین بعدها ده یک رو ایجاد کرد. اگر میخواهیم بگیم که خدا اول هست او میخواد که ما با دادن ده یک از نوبر هر چیزی که داریم به او این واقعیت رو نشون بدیم. به همین ترتیب او در فرمان سبت میگه من یک هفتم وقت شما رو میخوام اگر خدا برای ما چیزی هست و همه چیز هست و باید هم باشه یک روز از هفت روز هفته رو به او اختصاص بدید و بگید این روز خداست این درخواست نامعقولی نیست کاربرد دیگه ای از سبت استراحت کامل هست از کارافتادگی ها افسردگی ها به خاطر این هست که مردم اصل سبت رو ندیده گرفتن خدا در این فرمان گفته شما لازمه که یک هفتم زمانتون رو نه تنها برای من و پرستش بلکه برای آرام گرفتن از زحماتتان اختصاص بدید. بسیاری از اساتید دانشگاه این رو بیش از هر کس ای با شناسی پذیرفتند. هر هفت سال اونها یک سال رو تعطیل میکنند. این سنت بسیار خوبیه. ای کاش کلیساها این دید رو از اجتماعات دانشگاهی بگیرند و اجازه بدن شبانان هر هفت سال یک سال تعطیل بشن. وقتی به لوح دوم میرسید به فرمانهایی میرسید که مربوط به روابط افقی شما هست یا افرادی که در زندگیتون هستند. اولین فرمان در مورد والدینتون کاربرد داره. در شرایط عادی اونها اولین کسانی هستند که با زندگی شما مربوطن و فرمان میگه پدر و مادر خود را احترام نما. جالبه که چطور فرهنگ یهودی هنوز از این فرمان به فراوانی بهره میگیره. فرهنگ چینی حداقل در گذشته همیشه از این فرمان سود جسته. چون که چینی ها فکر می فرزندانشون نه تنها باید والدینشون رو احترام کنن بلکه باید اونها رو بسطاین. اونجا پرستش نیاکان وجود داشته. بخشی از پرستش اجداد این بوده که شما باید قبل از مرگشون اونها رو بپرستید. اونها واقعا به سن و حکمت سن احترام می زشتن. و اون چنان نفع اجتماعی رو برای چینی ها به دنبال داشت تا جایی که در مقایسه با سایر فرهنگ ها، اونها بی نیاز از دادگاه اطفال بودند این فرمان تنها فرمانیه که وعده‌ای به دنبال داره اگه پدر و مادر خود رو احترام کنید عمر شما بر زمین طولانی خواهد شد کسانی هستند که در زندان هستند کسانی که زندگیشون به تاراج رفته چون که هیچ کس راجع به این فرمان چیزی به اونها نگفته یا از اهمیت اون و اینکه ببینند اون چی میگه والدین خود رو احترام کنید اون نمیگه از اونها اطاعت کنید در کتاب مقدس میگه در کتاب مقدس میگه فرزندان از والدین خود اطاعت کنید وقتی بچه هستید اطاعت کنید این صحبت مربوط به بزرگترها هست که میگه باید به پدر و مادر خود احترام کنید اونها همیشه پدر و مادر شما هستند و باید به اونها احترام بذارید شما لازم نیست که وقتی بزرگ شدید از اونها اطاعت کنید اما همیشه باید به اونها احترام کنید یک دلیل که این چرا اینقدر اهمیت داره اینه که وقتی به والدین خودت احترام میکنی به فرزندان خودت نشون میدی که در مورد شما چطور فکر کنن. داستانی از یه خانواده روستایی شنیدم در ایامی که هنوز مردم با دروشک رفت آمد می میکردن. پدر به پسر نوجوانش میگه و انبار برو و لحاف زخیمی که در اونجا آویخته شده بیار چون که می پدر بزرگت رو توی اون بذاریم و او رو به خانه سالمندان ببریم و نمیخوایم او توی درشک سرما بخوره. پسر جوان رفت بالا و خیلی طول کشید و بالاخره وقتی پایین اومد پدر گفت چرا این همه طول کشید؟ جوان گفت داشتم لحاف رو دو تیکه کردم. پدر پرسید چرا این کار رو کردی؟ پسر گفت خواستم نصف دیگش رو برای زمانی که من می‌خوام تو رو به خانه سالمندان ببرم نگه دارم. این فرمان منافع خیلی خیلی زیادی داره برای کسانی که از اون اطاعت کنن. بیاید مرور کنیم. چهار فرمان اول مربوط به روابط ما با خدا میشه. یک، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. دو، ما را از ساختن هر صورت و یا تمثالی در آسمان یا بر زمین به شباهت خدا من میکنه سه، ما را از بیهوده بردن نام خدا من میکنه چهار زمانی را برای پرستش خدای خود اختصاص بده. فرمان بعدی در اون لوح افقی فرمان هایی است که مربوط به روابط ما با اطرافیان ما در سطح افقی هست و شماره پنج احترام کردن به والدین بود. این فرمان وعده‌ای ای هم به دنبال داره که اگر ما اطاعت کنیم عمر طولانی خواهیم کرد. بعدی میگه قتل مکن. عملا به این معنی نیست که کسی رو نکش چون که در کتاب مقدس جاهایی هست که خدا به قومش فرمان کشتن میده. اگر کسی خون انسانی رو بریزه، خونش به دست انسان ریخته خواهد شد. در باب نوح پیدایش خدا به قوم خودش میگه که زمانی هست که وقت کشتنه. در عهد جدید در باب سیزده رساله رومیان به ما گفته شده خدمتگزار خدا شمشیر را بیهوده حمل نمیکند. پولوس میگه اگر با این مامور مجری قانون مواجه شدی از او اطاعت کن و او برای تو مشکلی نخواهد بود اما اگر از قانون ناطاعت کنی باید از او بترسی وقتی که این مامور مجری قانون شمشیر رو بر علیه تو به کار ببره او خدا رو خدمت میکنه. امروز اون شمشیر میتونه یک سلاح کالیبر نه باشه اگه شما بانکی رو سرقت کنید و مامور پلیس به شما شلیک کنه او خادم خدا محسوب میشه پولس به ما میگه که خدا قوانین و فرامین رو ایجاد کرده. قانونی که خدا وضع کرده بیان ارزشهای خدا در برابر شرارت است. بنابراین بر اساس کتاب مقدس مجرمین باید از مأموران مجری قانون بترسن. پس شما میتونید ببینید که فرمان ششم عملا نمیگه که نباید بکشید. روح این فرمان اینه که زندگی در دستهای خداست. خدا زندگی میده و اوست که حق داره زندگی رو بگیره. خبرگان سیستم حمایتی پزشکی جدید سوالی درباره فرمان ششم مطرح می‌کنند این سوالات بر موضوع زمان مرگ متمرکز هست. تعریف ما از اون رفت رفته رفته مبهم‌تر میشه این اصلیه که ما باید همیشه مد نظر داشته باشیم این حق خداست که زندگی بده و زندگی رو بگیره ما میتونیم زندگی رو با سیستم جدید پزشکی طولانی تر بکنیم اما خداست که دهنده و گیرنده ی حیات است داستانی از خانواده‌ای به یادم میاد که یکی از برادرانشون خونریزی بینی داشت از نوعی که تصور نمیشد بهبود پیدا کنه یک اصاب خواست که او رو جراحی کنه خطر بزرگی در برداشت و اون برادر ممکن بود که بمیره او گفت به هر حال او حکمت سلیمان رو نداره پس بذاریم جراحی کنه امتحانش میکنیم اما جراح دیگه اون بیمارستان مسئله رو با این تصمیم به دست گرفت او موضوع رو به شورای بیمارستان بیمارستانکشانید و جلو جراحی رو گرفت مردی که مخالف این جراحی بود یهودی بود دلیل دکتر یهودی در برابر شورای پزشکان این بود او در دست خدا هست ما نباید کاری کنیم پنج سال بعد بنا به گزارش بیمارستان اون برادر صد درصد بهبود یافته بود خانواده همیشه ممنون اون جراح یهودی بودند که گفت او در دستان خداست ما نباید کاری کنیم خدا تنها کسی که حیات رو میده و میگیره. این اصل و یا روح فرمان ششم است فرمان هفت زنا نکنید. به اعتقاد من روح این فرمان چیزی که ما باید به اون حقوق فرزندان بگیم. این نقشه خدا بود که در پیدایش باب دو بنیان گذاشته شد. انتخاب اشخاص و قرار دادن اونها به عنوان والدین که اونها هم بتونن فرزندانی به دنیا بیارن که شرکا و والدین باشند. ازدواج یا خانه یک زمینه امنی هست که خدا میخواد ایجاد کنه تا فرزندان بتونن زمینه امنی داشته باشند که در اون پرورش یافته، و آماده رویارویی با زندگی باشند امنیت فرزندان بسته به وفاداری و صداقت زوجی که ازدواج میکنند. به اعتقاد من این حقیقت قلب این فرمان هست به این دلیل خدا میگزا نکنید دلیل دیگری برای این فرمان در روح این قانون اینه که خدا میخواد زمینه امنی بسازه که در اون این دو نفر بتونن ترین احساساتی را به هم ابراز کنن که برای انسان مقدور و محبت وفادارانه خدا رو نسبت به انسان به تصویر میکشه. یادمه که به یه مرد جوانی مشورت میدادم که مثل بسیاری از جوانان امروزی با کسی زندگی کرد. او دانشجوی دانشگاه بود و دختری هم که با او زندگی میکرد دانشجوی دانشگاه بود. اونها در تابستان به یک شهر ییلاقی رفتن و در پایان تعطیلات پسر در اونجا مشغول کار شد و همونجا ماند و دختر به دانشگاه برگشت. دختر آخر هفته‌ها رو پیش او برمیگشت اما یک روز جمعه تلفن زنگ زد و دختر گفت که دیگه پیش او بر نمیگرده در این جلسه مشورتی که با او داشتیم او گریه میکرد و میگفت اگه شما میخواید خودتون رو درگیر چنین احساساتی بکنید باید یه تزمینی و اصولی باشه به او گفتم میخوای روز یک شنبه شهادت بدی این همون چیزی که من قصد داشتم به شما بگم ببینید این همون چیزی که کتاب مقدس تعلیم میده خدا میخواد اگر شما سر او میشید و خودتون رو به این عرصه سمیمیت میسپارید، باید زمینه ای باشه که در اونجا این احساسات مورد بحث قرار بگیره. این دیدگاه روح فرمان هفتم هست. زنا نکنید. فرمان هشتم اینه که دزدی نکنید. روح این فرمان اینه که خدا خدای نظم هست. بر مبنای فیض او و کاشت و درو کردن ما صاحب دارایی‌هایی در زندگی میشیم. یادتون ابراهیم در هنگام نجات ب وقتی که بر اون شهر غلبه کرد گفت هیچ چیزی با خودش نیاورده حتی یک جفت بند کفش. لو تاثیر شده بود و ابراهیم او رو برگردون. ابراهیم از آوردن قنیمت جنگی امتنا کرد تا کسی نتونه بگه من ابراهیم رو ثروتمند کردم. ابراهیم ایمان داشت که همونقدر ثروت داره که خدا بر مبنای فیزش میخواد داشته باشه و چیزی که خودش کاشته و درو کرده. وقتی دزدی بکنید از نظم مورد نظر خدا سرپیچی میکنید فرمان بعدی اینه شهادت دروغ نده این فرمانی که فکر میکنم به اندازه کافی از نزدیک به اون نگاه نکردیم میشتمید که مردم میگن من نباید دروغ بزرگی بگم اما دروغ کوچک اشکالی نداره پس ما دروغ بزرگ و دروغ کوچک داریم این فرمان چیزی در مورد دروغ گفتن به ما نمیگه اگه از نزدیک بهش نگاه کنید اون میگه که نباید شهادت دروغ بدید. میدونید یکی از زیرکانه‌ترین راهها برای دروغ گفتن اینه که حقیقت رو خارج از زمینه اون بگیم و یا اینکه فقط بخشی از حقیقت رو بگیم. دستکاری کردن حقیقت ترین راه برای دروغ گفتنه. خبره های این موضوع هستند. مردم وقتی میخوان کسی رو خراب کنن در این زمینه متخصص میشن. اونا میتونن این کار رو با گفتن بخشی از حقیقت در زمانی خاص و در فضای خاص انجام بدن. سالها پیش دانشجوی جوانی که شبان جوانان هم بود به آینه عقب اتومبیلش نگاه کرد و متوجه شد که از نه کیلومتر قبل ماشین پلیس رو تعقیب میکنه اولش او متوجه نشد که اون ماشین نامحسوس پلیسه زهره شنبه بود و شبان جوان فکر کرد که این صدای سوت کارخونه هست. وقتی پلیس سرانجام اونو گرفت شبان جوان فکر کرد که او رو زندانی خواهند کرد چند نفر از بچه‌های جوان کلیسا در ماشین او بودند و داشتن از یک گرده همایی جوانان برمیگشتند. پلیس گواهی‌نامه او رو گرفت و به ماشین خودش برد و کنترل کرد. بالاخره نزد ماشین برگشت و گفت: شما باید اقرار کنید که خیلی با سرعت می‌رفتید، اما من شما را جریمه نمی‌کنم چون که پدر شما رو می شناسم شبان جوان می‌داند که او پدرش رو نمی نمی‌شناسه. پدرش هرگز در اون اطراف نبوده. پلیس فقط فکر کرد که پدر او رو می‌شناسه. حالا این یک وضعیت اخلاقی بود او باید چیکار می کرد شبان جوان گفت: پدر من مرد بزرگیه حالا البته این یک حقیقت بود پدر او مرد بزرگی بود، اما همانطور که بعدها اونو توجیح می کرد اون چیزی که اونجا به اخلاقیات ربط داشت چی بود؟ میتونید از این مثال متوجه پشید که یک نفر میتونه با نگفتن چیزی از این قانون سرپیچی کنه اما با این کار ما شهادت دروغ میدیم من نمیدونم اگر شما بودید در چنین وضعیتی چیکار می اما ملاحظه کنید که فرمان چی میگه شهادت دروغ نده مهم نیست که چقدر زیرکان این کار را انجام بدید اگر شما هیله بکنید شما از فرمان نهم سرپیچی کرده اید این روح فرمان نهم هست. آخرین فرمان اینه به همسایه خود تمع مورز. روح فرمان دهم ده درست مثل روح فرمان هشتم هست. دزدی نکنید خدا در مورد چیزی که ما داریم منظوری داره همسرمون خانوادهمون خونمون جایگاهمون در زندگی خدا از همه این چیزها قصدی داره به گفته کتاب مقدس ما نباید خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم ما همه منحصر به فرد هستیم وقتی خدا من و شما رو خلق میکرد الگور رو کنار گذاشت اون نمیخواست که ما شکل کس ای باشیم اون نمیخواست که کس ای شبیه ما باشه حالا اگه این حقیقت داره پس ما نباید خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم و بر اون دیگران دارن حسد ببریم و تمع بورزیم حسادت و تمکاری نشون میده که ما از اراده خدا در زندگیمون راضی نیستیم این برخلاف پذیرش چیزهایی که آرامش خدا رو که فوق تصورات آدمی هست برای ما میاره اینها ده فرمان در ذات و روح خودشون بودن وقتی شما روح این ده فرمان رو درک بکنید شما روح صدها فرمان دیگر رو هم خواهید فهمید در کتاب خروج و مخصوصاً تسنیه شما قوانین زیادی رو خواهید دید اون قوانین به ما داده اند که بتونیم به فراوانی حیات داشته باشیم. اونها برگرفته از قلب محبت خدا هستند. بنابراین وقتی به این قوانین میرسیم و مخصوصاً به کاربرد اونها در این ایام ما همیشه باید به حقایقی که از پولوس و عیسی شنیدیم فکر کنیم. شریعت میکشه اما روح حیات میبخشه. قبل از اینکه قوانین خدا رو در زندگی های قوم خدا و در زندگی خودتون به کار بگیرید، همیشه قانون خدا رو از منشور محبت خدا عبور بدید. من اعتقاد دارم که این به شما کمک می کنه که روح قانون خدا رو درک کنید. اینها فرامینی بودند که خدا به موسی داد تا به قوم کسی رو بده که عالی‌ترین معیارهای قدوسیت رو داشت. ما موافقیم که هر چیزی که خدا به ما فرمان داده خوب و درسته. اطاعت از این فرامین راهی عاقلانه برای زندگیه و بسیاری از کسانی هستند که سخت در تلاش‌اند تا از این فرامین اطاعت کنند. خدا قدوسه و همینطور این فرامین با قلب‌های ما نیست صحبت کرده ما میدونیم که او حقه اما کی میتونه از همه این فرامین اطاعت کنه شما تونستید من اطاعت نکردم و میدونم که شما هم اطاعت نکردید و نمیتونید. عهد جدید به وضوح به ما میگه اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد اما در یک مورد بلغزد مجرم به شکستن تمام شریعت است عهد جدید در یعقوب ده دو به وضوح به ما میگه اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد، اما در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است. خب، پس چرا خدا این ده فرمان را به ما میده؟ چرا خدا ده فرمان را به قوم اسرائیل داد در حالی که میدونست کسی نمیتونه کاملا اونها رو به جا بیاره؟ به جواب خدا گوش کنید. هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت در نظر خدا پارساش شمرده نمیشود، بلکه شریعت تنها گناه را به ما میشناساند رومیان بیست سه پس منظور از ده فرمان چیه؟ برداشتن گناه؟ نه، خدا میگه منظور از شریعت آشکار کردن گناه است یا آگاه کردن ما از گناه. چرا خدا ده فرمان مقدس خودش رو به موسا و به بنی اسرائیل میده؟ آیا او شریعت رو به اونها داد که اونها با نگه داشتن شریعت بتونن مستقیما وارد بهشت بشن؟ نه، این نمیتونست باشه چون که خدا میگه اگه از بجا آوردن همه شکست بخورید شما محکوم هستیم. منظور از ده فرمان چیه؟ کتاب مقدس میگه هدف از دادن شریعت آشکار کردن گناهه و اینکه ما گناهکار هستیم. خدا شریعت رو به ما نداده که ما را از داوری نجات بده. خدا اونها رو به ما داده تا به ما نشون بده که ما گناهکاران محکوم هستیم و احتیاج به یک منجی داریم. شریعت یه جورایی شبیه دستگاه رادیولوژی در بیمارستان هاست. اگر من بیمار هستم و نمیدونم که مشکل من چیه؟ شاید دکتر با گرفتن چند عکس منو معاینه کنه. منظور از گرفتن عکس رادیولوژی چیه؟ اون منو شفا نمیده. فقط یه منظور داره، آشکار کردن چیزی که درون من مشکل داره. به همون ترتیب، شریعت قدوس خدا دقیقا مانند دستگاه رادیولوژی منظور از شریعت نشان دادن مشکل درونی منه، یعنی گناهی که در قلب و جان ما هست. اگر من رفتارم رو با شریعت قدوس خدا مقایسه کنم، خواهم دید که چقدر از خدا دور هستم در افکارم در کلامم و در رفتارم وقتی به شریعت خدا نگاه میکنم و بعد به خودم نگاه می میکنم میفهمم که من در برابر خدا گناه کردم در برابر انسان گناه کردم و نمیتوانم با معیارهای خدای قدوس زندگی کنم شاید بعضیا بگن صبر کن دوست من من آدم خوبی هم. من مثل کسانی نیستم که دزدی میکنند فریب کارن، زنا میکنند یادتون باشه اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد اما در یک مورد بلغزد مجرم به شکستن تمام شریعت هست. اینو کتاب مقدس در یعقوب ده دومینگه. همه ما گناهکار هستیم. هیچ کس عادل نیست حتی یک نفر هم. همه گمراه کشتن. هیچ کس فهیم نیست حتی یک نفر هم. پرقی نداره زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا کوتاه می آخرین چیزی که میخوام در کتاب خروج ببینیم چیزی که من بهش تصویر میگم. در قسمت‌هایی از کتاب خروج تا جایی که بررسی کردیم دیدید در کپذیرشش خیلی آسونه وقتی که به یک سوم پایانی کتاب خروج می‌رسید موسی یک کتاب معماری در خصوص مشخصات مصالح بنا به ما میده مگر اینکه یک معمار باشید تا بتونید آخرین بخش از کتاب خروج رو با حوصله بخونید این بنایی که موسی ساختنش رو یاد میده همونطور که قبلا گفتیم این یک بنای مهمی هست این خیمه نامیده شده یا معبد کلمه عبادتگاه یا معبد معنی اینه اون خیمه خیمه پرستش بود در آموزش مشخصات ساختمان این معبد خدا به موسی نشون میده که چطور پرستش بکنه و از طریق مکاشفه ای که به موسی میده میگه که قوم خدا چطور پرستش کنن در کلیساهای امروزی ما شکل های پرستش ما یا پرستندگان ما هنوز بر مبنای اون خیمه ای هست که موسی بنا کرد اون خیمه شبیه یک خیمه کوچک رنگارنگ سیرک بود وقتی به کتاب لاویان میرسیم از نزدیک به خیمه پرستش نگاه خواهیم کرد در حالی که داریم کتاب خروج رو جمع بندی می‌کنیم میخوام خلاصه ای از کتاب رو بهتون بدم من به خلاصه خودم دیدگاه 2020 بیست بیست از کتاب خروج نام دادم 20 باب اول کتاب خروج تمثیلی از نجات هست. اونها های تمثیلی هستند که نشون میدن چطور نجات پیدا کنیم. 20 باب دوم کتاب خروج شریعت و خیمه پرستش رو به ما نشون میدن. خلاصه کتاب خروج میتونه اینجوری جنبندی بشه. اولا کتاب خروج به ما راه رو نشون میده. کتاب خروج به ما راه خارج شدن از بردگی گناه یا راه نجات رو نشون میده. بعد کتاب خروج به ما سیر و سلوک رو نشون میده. کتاب خروج به ما نشون میده که نجات فقط یک راه رهایی نیست، بلکه نجات سیر و سلوک روزانه هست در کتاب خروج ما همینطور عجایب و معجزات رو میبینیم تدارکاتی که خدا برای این قوم میبینه در کتاب خروج ما کلام رو در میابیم که کلام خالص خداست و در پایان کتاب خروج در حدود یک سوم پایانی کتاب ما پرستش رو درک میکنیم یا خدا به ما نشون میده که او میخواد چطور او رو بپرستیم تمثیل نجات در کتاب خروج رو به خاطر بسپارید کتاب خروج به ما راه خروج از گناه رو نشون میده. کتاب خروج به ما نشون میده چطور نجات پیدا کنیم. کتاب خروج به ما نشون میده خدا میخواد وقتی نجات پیدا کردیم چگونه زندگی کنیم. به همین دلیلی که در کتاب خروج خدا این همه قانون به ما میده و بالاخره خدا در کتاب خروج به ما نشون میده که خدای قدوس میخواد چگونه توسط انسانی که نجات داده پرستیده بشه. دعا میکنم در حالی که کتاب خروج رو بررسی میکنیم اولا نجات یا رهایی رو بفهمید تا اینکه بتونید نجات و رهایی خودتون رو از بردگی گناه تجربه کنید و بعد ایمان دارم که با بررسی کتاب خروج شما چیزی رو بفهمید که مربوط هست به منجی بودن یا تبدیل شدن به وسیله ای که توسط اون کس ای میتونه از بردگی گناه رها بشه و نجات پیدا کنه به اعتقاد من این مفهوم کلی کتاب خروج هست. زمان ما ارزشمنده و به سرعت داره میگذره از شما متشکرم که در مطالعه پیدایش و خروج همراه ما بودید. باشد که خدا این بررسی کوتاه رو برای کمک به شما به کار بگیره که با کلام خدا معنوس بشید و دعای من اینه که اجازه بدید کلام خدا وارد ها و زندگی شما بشه چون که بعد از اون چیزهای شگفت و معجزه آسا برایتان پیش خواهد آمد. دوستان خدا میخواد که همه ما از اسارت گناه آزاد بشیم. و وارد سرزمین وعده برکت او بشیم. اما همونطور که دیدیم این فقط بخشی از نقشه اونه. خدا نمیخواد ما فقط دریافت کننده های آزادی او باشیم بلکه اون مایل ما وسیله هایی باشیم یا خادمینی که نجات اون رو برای دیگران امکان پذیر میکنند ما مطالب زیادی رو در مطالعه دو کتاب اول تحت پوشش قرار دادیم. دایما اینه که این پیغام نه تنها کمک کنه شما کلام خدا رو بهتر بفهمین، بلکه بلکه مهمتر از اون شما کلام اون رو در زندگی خودتون بپذیرید حالا تا برنامه بعدی با ما باشین که خداوند عیسی مسیح و خدا پدر آسمانی ما که ما رو دوست داره که فیضش بیش از اندازه هست در جایی که هستیم با ما ملاقات کنه و قلبهامون رو تشویق کنه و امید بده تا با چالش هایی که در این هفته پیش رو داریم روبرو بشیم و شما رو در هر کار نیک تقویت کنه.